بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الله الدائم على المجمعين اللهم اغفر لنا جميعا المستعدين وارحمنا. رحمتی که یا رحمت رحمیم عرض شد راجع به کلمات کلمهی که در اینجا محل بحث بود راجع به رجوع به مسادر اهل سنت و مسادر لغوی گفتیم مراجعه بشه به مسادر لغوی و یک مقدار این دو کلمه معروف رو بررسی به اصطلاح بشه یکی کلمه سب که اینجا محل کار ما بود و یکی هم کلمه لحظ این دو تا لحظ دیروزی مقداری از عبارات به اصطلاح ابن فارس معروف احمد ابن بن فارس مذکریا صاحب کتاب معجم مقالات اللغه که انصافا کتاب تحلیلی خوبی است، ظاهری خوبی است. حالا با کارهاش موافق باشیم یا نباشیم بحث دیگر و یه مقدار هم امروز از این کتاب ابن سیده که بنظرم از اهل علم درست باشه، مال مرسیه باشه. این هم مرد واقعا خوغلاده است خیلی پر کار پر زحمت خیلی دقیق و انصافا زحمت زیادی کشیده و هم شواهد و خوب یعنی تخبار خوبی داره و هم استعداد تحلیل واضح تحلیق خوبی داره دو کتاب معروف داره یکی المحکم و یکی هم به اصطلاح المخصص مال نسیده داشت هر حساب انصافا در مصادر در مواز اللغه خیلی دقیق است من به همین کتاب مهمشم اگر بخوام یه ابات دیگه هم بگم خیلی طول می‌کشه یه برای اینکه روشن بشه و کجاها اشغال داریم و کجاها باید کار بشه در مرکز و در زمان ما الان اگر بنا بشه در مواز لغوی در دنیای عرب یا غیره کتب لغت نوشته بشه که نقیصهای بود برطرف بشه یک مقدار عبارت ایشون رو می‌خوام ایشون علاقه یک ترتیب خاصی برای بحث داره ترکیب مخصد خودشه و اون راهی رو که من دیروز عرض کردم که روی صوت حساب بکنیم نه روی این لحظ و واژه یعنی مثلا میدهیم که معنی علم رو نگاه بکنیم این ولام و مین رو در حالات شیشگانهش به اصطلاح براتی ایشون هم همین کار رو میکنه یکی از کارهای ایشون بله همین راهیست که من عرض می کنم مثلا اینجا باز کردم لفظ صوفه که صوف باشه لفظه صوف اول صفه که صفا صفه باشه بعد داره مقلوبه صوفه بعد داره مقلوبه و صفه این بین عنوان باز مغلوبو توسه باز مقلوبه و فسه. این مقداری که آمده و پیدا کرده خیلی هم زحمتی این انصافه منحجش ایشون معاصر شیط توسید چهارتا پنجم خوردهی و خاتشه یعنی ماله ده غن قبل ماله ده غن قبل انصافاً هم در ضمنم روشن بشه براتون حالا تازه این یکیشه خیلی ایشون زحمات بسیار فراوانی و مخصوصا تطبع های زیادی شهر شوارد و نواده رو الان همین صفحه رو دیدیم در حوض پنج ایشون نقل کرده که پیدا کرده حالا در سببه که سببه باشه که محل کلام ماست سینوبا یکی سببه داره یکی سب, سب داره به خاطر اینکه که شده یکی مغلوبه به بسسه داره در مغلوبه اون یکی بله یکی بابوس به بسه داره این ستار هم سه تا هم یکی دنبال این بحث آوردن این ها الان تصادفاً در دنیای روز خیلی خوش حساب میشه یعنی نحوه برخورده با لغت اینطوریه البته این سری که ها در کتاب‌های مثلا جواهر اینها که نیامده بذات تصورش این بوده که مثلا برخورده لغوی‌ها یک برخورد ضعیفی بوده البته مثلا ایده هم که از این معاصل ما از منجد و عقرب هر اثر نहरु میکنه یا از مجمول بحره مروطری که خیلی کتاب ضعیفی این مجمول حالا اینکه به این دو کتاب ابن سیده خود سیده و سین و یا و دال و ه سیده در لغت عرب منه گرگه از اسامی گرگه سیده ابن سیده انصافا کتاب بسیار خوبی داره هم این کتابش هم مخصصه محکم مخصصه حالا مخصص مثلا میدیده هم من هم ده شما رو جلده شده نیستیم میکرم چند جلده در از این که ایشون نوشه سبه هو سبه هو ما همراه با این صحبت هایی که ایشون اون ملاحظات تاریخی و لغوی رو هم عرض میکنیم. ایشون بخواد مثل همون حرف یکی دیروز از این کتاب ابن فارس کردیم اصل رو به صبر برگردونه قال فما کانزم به بنی مالکن به انصب به من هم قلامون فسد همراه این صبر رو ایشون صبح اول معنیش پرش دادیم جنگی دعوایی بوده مروح بوده به یکی از بکسا به ایکی از افرادشون احانت کردن اونم پای شطر رو برید و شطر رو به اوضاع به هم بیخن دوم رو دیروز که عبارت ابن فارسو خوندیم بانه اغره گرفتن خودشم گفته یورید و معاغرت قالب ابن سوسه این قالب سوسه پدر فرزده بال مال در مقابل سوهیم ابن وخیل ریاهی فع اقر سهیم 505 رو شوتو رو کاش بری سم بداله و اقر قاله پدر فرزده 1700 اکثر دیگه شرح بده مال این عقر رو دیگه از آثار باستانی فدای نباید اصلا که این صبر رو ایشون به معنای قطع گرفتن در اون کتاب به معنای عقر اومده قطع پای حیوان انصافا این به نظرم بهتره یه مخاط بگیم من اقره باشه معنی قطع هست بعد حالا شاید تکمیل من نمیخوام بخوانم ولی درست جانش بعد ف... بعد گفته وساده او یا صببوه، ایش سبب شکم این هم که به معنای فهم و دشمن این درست بعد گفته و اصل او اصلش هم از همون دفتر. این این مرحله این مرحله حبزه. این اصل اون منداله این حدسه یعنی اون که نقل کرده که سبه رنه قفعه این درست نقله اونجایی که سبب رنه شتمه درست اما این که این ارجاع بون میشه این استظهار این شخصه چون در مقابل من اصلا بکنیم کنم هی وجهات نظر رو میگم چون در مقابل این استظهار ممکن است شما بگیم نه اون یک اصله اینم یک اصل چه, چه دایی داریم یعنی که ما هم الان این رو یعنی بحث بکنیم اونی که الان اگر بنابرای شد دنیایه بقیال مفاسی و فرنگستان عرب یا مجموع لغت عربیه کاری انجام بده کار صحیح این الان اگر یک باید با شواهد موجود ببینید بکنید، با شواهد موجود که الان پیدا کردن شواهد موجود در سلام عرب خیلی راحته با کامپیوتر. بیشه مثلا کلمه صبر رو استخصا کرد جایی که معنی قرد باشه اگر از دناب در یک شعر شاعر در یک زمان معیل به بکار برده شده این صاحب نمیشه اثبات لغت رو با یه مورد کرد و با یه گروه بسی اون قبیلی بنی فلان مثلا این نمیشه اثبات اما شرط رو الان تمام عرب بکار برده صد به معنی شد. در روایات ما در آیه مبارکه الان همین دنیا معاصر ما در کشورهای عربی صبر و معنی شدت این استظهار که اصله منذاره این باید اثبات میشه خب طبعا مثلا میگن چون آدم با شد میگن اون طرف رو میکنه خوب خب احتمال داره در حد احتمال یک نکته در حد احتماله یه نکته دیگه خوب دقت بکنی وقتی میگه اصل اونه مراد از این کلمه هم با توضیح بریم یعنی ما وقتی اشتقاقات مختلف نگاه میکنیم میتونیم در بین اینها یک جامعه تصور کنیم که قرض باشه این معنی اصلا باید اول توضیح بدیم نه اصل بی این معنی که الان وقتی انسان عرب شتم سببانه شتم میگه توی زنش قرض میاد این لازم نیست نه چون باید بیرمان ها اول شناخته بشه یه دفعه شمایین اصلی یعنی مثلا اصل این کلمه اصل این کلمه جوریه که هر که عرب بخاره توش مفهوم قد خوابیده بگه ایشان خب ما باید مهم دره همین تحلیل میکنیم ما چون بنا نگذیم که تعبز بکنیم دستان دست, دست ابن فارس در کلمات ابن فارس که دیروز خوندیم واضح بود و در کلمات ایران همینه یعنی در هیات‌های مختلف شکلای مختلف اون ریشه قهر در اینها ملاحظه شده این مطلب مطلب بدی نیست میخوام بگم غلط اشتباه نشید این این باید شواهد اقامه بکنه برای این مطلب نه اولا خود اینه اصل توضیح بدن ممکنه بگه در مجموعه اصطلاح استعمالات ما که نگاه میکنیم یک معنای قهر توش خوابیده حتی اگر طبعه معنای مثلا عقل باشه پای حیوان رو بریدن یک معنای قطعی توش خوابیده مخابی این توضیح بدم این مطلبی که اینا میگن این قابل قبوله دفت بکنی چون ما میگیم که مخابی این نکته رو دفت بکنی ما وقتی که در دنیای لغت میگیم اصل اینه ریشه اینه معناش این افنام خود این عبارت معنا بشه معنا این عبارت این نیست که هر وقت الان انسان عربی صد به توش معنای قطعه تو ذهن نشون میاد نه ممکن اصلا معنای قطع تو ذهن نشه نه یاد به فعل نمیاره این میگه با مجموعه شواهد احساس میکنیم که این معنا توش خوابیده و الان توجه نداره اصل و منزله که این خوب دقت بکنید مثلا الان در دنیای عرب عقل و منه اندیشه و خرد به کار نمیذاره میگه حالا میگن اصلش اقال شطور بوده وقتی شطور میخاویده با یه پارچه چیزی تنابی دور و پاشش که دستش که بلند نشه خب الان ممکن از عربی که فرض کنیم در شهرها زندگی میکنه شطور هم نیده اقال هم نیده مثلا به ذهنش اقال از بیاد اقال شطور به ذهنش نمیاد این کلمه اصلش از اقاله این درسته مراده از اصل خوب دقت بکن این همون خبرویته لغوی که اهل خبره است ما همین میگه ما وقتی اشتغاقاتش رو در نظر میگیریم حس میکنیم این معنا توش خوابیده روشه قرر کردیم نه اینکه الان بالفعل انسان عربی وقتی کلمه صبر رو بکارنه توش فعل خوابیده اه خوابید نیست پس این یک استظهاری که ما از مجموعه معانی مختلفی که برای مثلا ما میگیم از مجموعه معانی مختلفی که برای زرر نگاه میکنیم توش کنبود خوابیده زرر نقص یعنی ریشهش باید یک چیزی باشه که توش نقص بوده زرر مثلا حرب انسانی که چشم نداره زریر میگه چون مثلا زرر تو جرر دهیم دوتا کوک فاصله داره، به دره هم میگه چون مثلا تراش پیدا کرده راست پایی مجموعه شواهد رو که نگاه بکنیم مثلا زرر یه نوع نقصه. اما مجموعه شواهد که نگاه بکنیم حرج نفس نیست ما جهده علیکم بگیرم هراج حرج نفس نیست هراج رو که خوب تو اشتراقه واسه یه نوع زیره خوب زیر قیل از نقصه. پس ادله نفی هر چون این بحث لغوی در خیلی در جایی فقه اصول به درد کارمان ما رضا باید فقی بتونه قابلیت نمید کتاب لغت نیسته بتونه بفهم کلمات لغوی ها ریشه هاش و قابل قبول باشه یا قابل قبول نباشه اینو منده پول هست اما چون اصطلاحه و چون ریشه شناسی میکنه مثلا اگر این شد یه دفعه انسان یه سفری میره مالشو میدوزه این ضرریه یه دفعه مالی نمیذوزه اما احتمال هی ضرر میده میگه مثلا مم. تو این راه در بیاد منو بکشن در بیاد هم بگیرن این حرجه این سفر حرجیه اون سفر ضرریه الان ما در رساله های لازره نگاه بکنید از در تفسیر لاهر است بعدو گفتن مثلا لازره همون لاهره چه لازره و لاهره این تصوری که ما الان به شما ارائه کردیم لازره با لاهرش فهم میونه از تو لاحره شما نداریم لازرر داریم لازرر زرر ببینه کمبود و نقصه، کاستی این نوع کاستیه حالا زرر مالی باشه جسمی باشه نمیدونم ناموسی باشه آوروی انسان باشه پس دقت بکنید، این معنی اصلوه اینه معنی اصل نمید یک بحث اینه که اصلوهو. یعنی ما وقتی موارد اشتقاق رو و موارد مصرف نگاه می‌کنیم، یه نوع معنای قطع تو اون خوابیده در مقابل طرف مقابل میگه نه شرط معلوم نیست که قطع باشه معلوم نیست که حالا برطرزن ثابت شد که سبب که در اونجا معنای قرد آمده این حالا پس یه مورد شعره پس دو, دو مورد، سه مورد ما باید میشیم مثل مثلا مثال که دیروز آقای ماست در وازه یه رابطه بین خط و شعر پیدا بکنیم شوباطی در هم معلوم نیست حالا اونم باشه. اونم مرده نیست. خود که من گیجیه. اونم احمد میگم الان وقت ممکن است این طور بگیم چون صبه در لغت عرب آمده به معنی آر شاید صبر رو از صبه صبه هم فرصه این لفظه سمودی باشه یا لفظ ابری باشه این مشکلاتی که الان در این کتب لغت هست این قسمته دقیقه میکنی ممکن... بلیگه چی میگیم اینجا؟ میگیم خود قرد یک اصل ممکن در یک طایفه از عرب بوده در یک زمانی بوده خود شرط و آر آر چیزی که انسان شعن خودش نمیدونه کلمه اورت رو هم از همون گرفتن هر چیزی که انسان آر بدون در اظهارش اورت میگرد اصطلاح هم حالا فرسان زانوشو نمیخواد در بیاره خیلی زانوشو میشه اورت اورت نمیه یک معناه خاصی باشه کاری رو که انسان آر میدونه ظاهر بشه اورت میگه اصطلاح اورت اینه صبح هم به معناه آر د لذا اینه که این نقطه اختلاف بین لغوی ها همینجاست اینه که الان اگر بخیم کاری بکنی، بدیم نه مجموعه شواهدی که ما داریم احتمالا لفظ صبه حالا صبه عربی بوده از جای دیگه آمده به معنای آر بوده از او اشتفاق سب کردن سبهو یعنی یک آری رو یک صبه رو در حد او قرار داد اون قسمتی که بگیم اشتحادی اینجاست و اصلهو منزاله دیروز ما هم که خوندیم عبارضی این فارغتی این توضیح بدیم پس یک باید موارد رو نگاه بکنیم الان نگاه کردنش با کامپیوتر آسانه که صد به معنای قهط آمده باشه این شعر در این شعر نمی کنم و معلوم هست که یک شعر کفایت نمی‌کنه برای اثبات یک لغت این اثبات ممکن در همین لغت باشه. در کتاب ها ها که در لغت جوهری زم به سبب و به تناب سبب میگفتن خب لغت دیگه نداره فقط حوزهی ها میگفتن یعنی حوزهلی ها نستازه به حوزهل حوزهلی حوزهلی ها میگفتن سبب الان هیچ عربی این استعمال نمی کنه سبب استعمال نمونه دریتوان استعمال نمونه بعد اشتقاقات دیگه باب تفعیل سببه هون وقت شعری هم آورده سببه رو یعنی این رو همون ذابطه در میان ک این قاعده رو دارن که غیر از فیل سلاث ها اگه مجرد باشه چه سلاثی مزیدی از این به کار برده شده و در این کار ها اون سلاثی مزید چه معانی داشته مثلا یکی اینجا سب به کار برده مثلا سب باوه. باوه خب احتمال داره که این اصلا یک وقت مستقلی باشه لغت جدازانه سب باوه این دوم بعد از شست دوبومی رو سب باوه بیده. و صبح آر این احتمال داره اصل باشه در بر حال به این صبح و صب و تسب و اسبوبه و تسبور هم آورده، سابدهو هم آورده. بعد از این اشتباه سبب به معنی الذي لذی جساد دکده. سب رجلون سب استعمال کرده مثل زره، کسی رو سب سب, سب. بعد از این اصطلاحات یکی دیگه سفر رو به معنای سفر هم بکار برده که دیروزم از عبارت ابن فارس خوندیم ارجاش به قطع داشت وقت سفر رو به معنای خمار روستریه که زنها به سرشون میگذارن موسیون باش نیکشونن یا امامه به معنای امامه بکار برده شده این جور چیزها این دو تا نقل این ما الان برگردیم به شواهد تاریخی مثلا ایشون در این کتاب دیلوز که خوندیم شعر دلیلی بر سب نداشت ایشون یه شعری نقل میکنه و اشهد و اوفل حلولن کفیرتن یا حجون سب بر زبرغان زبرغانن مزعفرها مزعفر صفت برای سبه ایش نشه قیل یعنی امامته و قیل چیزی دیگری قسمت پایین بدنش رایست خب ببینیم با یه شعری که مردد بین دو معنای بسیار عجیب و غریب اثبات لغت خیلی مشکله این خیلی مشکله که ما مثلا بگیم سه معنای خمار یا به معنای عمامه بکار برده شده و بعدش هم مثلا صبه رو به معنی خود به اصطلاح اساقله اعضا مرزه بدن به کار برده شده یک قصه هم داره یک قصه ای هم نقل میکنه برای اینکه اصطلاح که اگر نیزه ای زده به اون نسبت گفت صبه اینها باید شواهد اثبات بشه به مجردی که یک مورد مصداقی استعمال بیاد انصافش خیلی مشکل لغت و اثبات کنه یعنی مثلا ما الان در دنیای عرب این کلمه رو نگید به کار می‌برن س برهنه امام یا مثلا معنی خمام به مجردی که در متون لغوی اومده اثبات خیلی مشکله ممکن است یک فردی در یک جامعه به کار برده شده و از اینجا روشن میشه بعضی‌ها هستن که مغلق مثلا عبارت مغلم می‌نیسن مثلا میگردن یک لفظی که خیلی است و شاذ به کار مثلا طلبس س برهنه در حاجون که امامت عمومته این به نظر لغت نیست که چیزی امروز نیست س برهنه نامون اصلا لغت نیست این. این شنبهی ماه مسوعی کرده نه؟ یکی این طوری. من از آل فازو کولند سولومن، خوب، شریذا استفی در زریس و آل و والگانه و و میگه این آل میگه لوغاتم تنظیم مساع ها. اینا، گفتم نیستن که انسان دورها آن سریدا بکنه. یک دستهای میشه. من دیگه اینگونه مکا شدیم نمیکنم آن خواستم. خیلی روشن نیست، اثباتی. اون مقداری رو که الان به این آیون اعتراض داریم، اینه که اگر ما در متون تاریخی سبره به معنای خمار یا امام نویدین این یک مورد هم که الان کاملا مشکوکه که مراد چیه لا اقل میتونیم بگیم این مثلا در یک برهه‌ای بوده یا لاقل در یک اصطلاحی بوده یا در یک محله‌ای بوده مثل بعضی شما شما دیدید که شما یه یک ده یک لفظی داره ده پرویشی دف دیگه داره میشین این رو نمیشه مع اثبات لغت باش بکنه اولا باید اثبات بشین استعمال شده این استعمال وارد و برترشم که شده باشه یعنی الان اگر ما جای دیگه پیدا نکنیم می نویسیم مثلا در کتب لغت این معنا نقل شده این اسم شعر بوده شاید مثلا در قرینه اولیه‌ی سال‌های قرن سالای 1220 جایی شنیدن نقل شده اما مصرف در لغت عرب نداره بعد نوشته سبیب لباسی که رقیق باشه این بعد نیست با قرط هم میخوره سب و سبیده وعنه شبقه یعنی تیچه این هم انصافا با قرط میخوره ولذا اینی مجموعه مجموعا به تعبیلیشون سه و ب و به توش معنای قرط خابیده با این استعمال شواهد میبینی روشن شد؟ اختلاف رو ما با ایشان, دقیقاً با ایشان اختلاف نیست ما بحث علمی رو بگم یک این که وقتی شرع ما آمده که الان هم استعمال میشه کسی را لستعمالم هست آیا این توش همون معنای قصد خوابیده یا این اصلا یه چیز دیگری بوده دو این مواردی رو که بعضی میگی میگه مثل سبیانی امامه آیا بالفعل در دنیا عرب مصرف شده یا یک مصرف محلی محدود داشته بعد مسئله سبب رو مطرح میکنه مسئله سبب که دیروزم در اون کتاب خوندی ایشون مخواد بگه سبب از سب می. چون درست معناش به عکسه سب به معنای قطع این معنی امتدان و طوله بله و سبب به معنای حبل سب و حبل و قیل سب الوتت اون میخی که میخی نه. یه چوبی میکنم که بر تناب خیمه رو بشیمندن اون رو وقتی داشت میگه اون به اون معنیست. و گفته شده که به این معنا آمده بعد ایشون سب را هم به معنی حمل به کار برده شد من به نظر هم دقیقه تر سه هم باشه که یک لغت محلی اسمال هودالی ها وقت در این تحلیل که آیا سبب با سب یک واقعی یک حقیقتنگی اصلا انصافش باز قبول میکنیم که این یه چیز دیگریه اصولا سبب که خودش معنی مستری است ولی ازا اشتقاب ازش میشه اما سبب معنی مستری نیست مثل اسم ذات میمونه. یعنی نهی که اسم ذات و از کردیم در لغت عرب این جورجه ها رو ما باید جور دیگه معنا بکنیم مثلا سفر با سفر سفر یعنی برطرف کردن اضاده کردن برداشتن مثلا چادر از رو سرش برداشتن و هیلتی سفر از ولم تا درون اون قصیده اینیه چه خوره ایس سفر معنای روش باز کردن در اینجا دارن تبرقه دارن برگه کنار زد کنار زد اما سفر به این معنا نیست سفر بوده از وطنه یکی از شواهد بسیار مهم برین که این با هم فهم میکنن اشتقاقه از سفر اشتقاق نشده گفته شده در بعض محاجم که سفر رجل به سفر رفت اما قبول دارم زارن سفر هست اون در این جوجه ها که معنای ذات اراده میشه اگر بخان اشتقاقی به کار رن به دیگه میبرند مثلا سفر رجل مثلا سبب اگر گفت سبده نمیگه سبده به معنای اینکه تنابش کرد مثلا سبد ال قطر مثلا قنده رو تناب کرد اصلاً ازش اشتباه نمی کنند خوب بکنید اگر بخواد ازش اشتباه بکنه باب تفعیل و تفعلت تشبده و سببده اون از سببه اون رفتی به سبد نداره خوب این ظرافت های بحث از اینکه عرب میره به باب دیگه برای استعمال فهر، مثلا بعید نیست که ذرهو به معنی ناراحت شد لا یضر رو کن منظر ازه پده ایتون علیکم انفسکن لا یضر رو کن در اینجا ذره در اینجا ذره نیست ذره ذره در ذره ذره زرر همون نقصه اینجا نقص مراد نیست ناراحت نشی نگران نشی ناراحتی ایجاد نکنه در شما سوء حال اینجا مراد اما اگر مراد خود نفس باشه ازش فعل سلاسی نمیکنه نمی نمیگه ذره معنی زرر میگه می ازر روید. و از کردیم در زمان نزول قرآن چه در محکه چه در مدینه در روایات و در آیات اگر میخواستن زرر نه زرر زرر رو م... ایجاد زرر باشه به باب مفائله میبردن. لا تزار والدتون ببرده که باب مفاعله لا و ولا زرار زرار مستر باب دوبار با مفاعله مفاعلتن زرارن و زیرارن مزارتن و زرارن به باب مفاعله می بردن در خود مدینه در زمان امام سال این سال 5 سال بعد از پیغمبر به باب افعال می بردن الان همه عربا باب افعال می بردن. مثلا حفر بیرن اذر به طریق المسلمین اذر باب افعال در اوائل باب مخالفه می بردم. اون اونجا زاره یعنی ایجاد zarar کرد زاره خود zarar در حقیقت همین که ادبی از کتب لغوی هم نوشتن مرادش همینه zarar رو مصدر باب فعل یفعل یا یفعلو نگرفتن مستر باب تفعل گرفتن این نه مصدر اسم مصدر نوشن زرر اسم مستر باب تفعاله است تذرر. تذرره یا تذرره و زرره زرر اسم مستر از باب تفعاله اما اضرار این باب افعال یا مزاره که باب مفعاله است این خوب دقت بکنید این مثلا سفر هم همینطوره سبر هم همینطوره ما به ما این درست تحلیل نشده لذا سبب ذاتن یک چیز دیگری خیلی سبر ازش اشتغاقات داریم یا صبح ما از سبب اشتغاقات خودش نداریم که مجرد نداریم اشتغاقاتش رفته یعنی اگر ما معنای سبب رو اراده بکنن بردن باب تفعیل اون در زبان عرب این بوده برای اینکه در جاهایی که اثبات معانی بکنن از اسمانی که قابل اشتغاق نیستن به بابهایی که استلاحه ما سلاتی مزیدون فیل میگیم و اونا میبرن مثلا یه قسمت از عربستان فعلی یا جزیره عرب چون جزیره عرب رو به سه قسم نجد و یمامه و تهامه به سه قسم تقسیم میکردن اون سخرای اول رو نجد میگن، بعدم یمامه و تهامه میکرد نجد منطقه یه بزرگ به سال عرب اگر وارد نجد میشون اون انجد انجده رو شد انجده دقل پی سبب هم همینطوره از باب تفعیل اون سبب رو برده ما یک سبب داریم یک سبب داریم اینی که اینا اومدن سعی کردن مثلا سبب رو نحری به یک نحوی به سبب برگردونن نه صافم بر نمیگرده ریشه ای مستفری داره حالا بله بعدم یه مقداری وارد یک بحث عروضی هم شده در کتاب ابن سیده که اصطلاح اله عروض در سبب که هر متحدث حرف ساعتی به شکل معینی و اون بحث دیگه‌ایه مثلا از سبی بمن الفرس سبیب یک قطعه یعنیم مویی که سر مثلا دم بشه است یا الخصلت منشه، سبید و منشه سبیب و سبیبه پس بنابراین تا اینجا این حرف آرومد و ها روشن شد خلاصه حرفشون اینه که ما وقتی موارد مختلف اشتقاق کلمه سین با با به قول خودیشون سین با با رو میبینیم توش توی مجموعهش قرقها دو جا مشکل داشت خواهد یکی سبب خب دو سبب توش خط نخوابیده یکی هم صبر به منعه شهر اینا آمدن گفتن چون این حالا سبب رو که خارج کردن صبر رو گفتن که چون یه مورده این هم باید کش معنای قرده باشه یعنی چی؟ این یعنی در اصل در اصل از محصولتون معروف این طوره که معانی معبول از معانی محسوس گرفته شده درش معنای قطع بوده همون صبیه است که معنای شقمه. که انصافاً استکازات استلهایی ما توادر ما خیلی با این قسمت مساعد نیست. پس اجمالاً مواردی با شواردی که ایشون نوشه استعمالات در ریشه سین بده به معنای قطع و جدا کردن ساق خا... شده. انصافاً میشه این رو فهمی. سین دو تا با و قطعا هم در یک درز اشتقاقاتش معنی شتمه و شتمه هم همونطور که در یک لفظ دیگرش هست من صبح معنی آر یعنی چیزی که موجب آر پلیدی، زشتی، پلشتی انسان میشه این انصافاً هست اختلاف فرست تره هم نکاه ارجاعش بیدیم به اون امکان داره ارجاع داد نمیخوام بگم امکان پس دقت بکنید اینی که ما خیال بکنیم لغوی ها فقط آمدن موارده استعمال گفتن نیه تحریل دادن حالا شما موافقت از بکنیم نکه برده دیگری پس در حقیقت این رو قبول کردن که صد این, این حروف سگانه توش معنای غد خوابیده در عده از معنای آر و زشتی و پلشتی حالا گفتن توش معنای اون اصافل اعضام مرز بدن هم هست ممکنم این به خاطر زشتی و پرشیش باشه آرش باشه اگر برفرسابس بشه انصافش میشه دو تا معنای تقریبا رئیسی رو قبول کرد و قید از سبب که حساب دیگری داره یکی معنای آر و زشتی و اگر این رو قبول کردیم باید بگیم مثلا اینجوری باید بگیم چون ما تاریخ لغت رو نمیدونیم اصلا شبه در عرض لغت دیگری بوده وارد هر شده از این کرده. خود سبله هم یه حالا در خود عرب بودی از لغت دیگه از این سبله سین و باعه مترر معنای قصر رو میفهمیدن این خلاصه یه بحثی که ما الان عبایتشون رو و تعلیقات رو که ممکن است در اینجا گفته بشه پس اجمالا ما با ارتکازات عربی اصل این که لفظ و ادهی از مشتقاتش به معنای پار و زشتی باشه این رو کاملا میفهمیم اون چیزی که به صورت زشتی یعنی به عبارت اونخرا یک چیزی که از حد اگه بخواد مقابلش هم ذکر لذا باز اینطور بگیم چون در بحث را عرض کنیم در حقیقت مقابلش هم یک چیز نیست در حقیقت در مقابل سب دو چیزه حالا بخوام من یک مثال عرفی بزنم که انما ما یک امر متعارف داریم که به اصطلاح روزیون میگیم استاندارد داریم یکی از اون بالا داریم یکی از اون پایین داریم که مثلا وقتی به کسی این قضا بخور این رو جزو متعارف حساب میکنیم اما اگه این قضا میل بفرم مایل نوشه جان بفرم این بالا می‌گیریم. اما اگه این قضا مثلا زهر رووزو مثل اینطوری این رو مثلا پایین میگیریم یعنی سرد در حقیقت در مقابل دو چیزه یکی امر متعارف یکی هم مرده اون مخشی که بالا قرار میگیر در اسطلاح بقیقت عرب عدب بشی که مشق میشه ترکیب به اصطلاح مشترع منظر میشه به ادب القول و ادب الفعل ادب الفعل رو اصطلاهان اخلاق میگن البته خوب یه بحثی هم داره که اون ادب الفعل تنها اخلاقه یا به سه بخش مختلف میشه یکی خود ملکات نفسانی چون ملکات نفسانی خوب و بد داره بعد اوصافی که انسان داره ممکنه خیلی هم نباشه صفتی داشته باشه بعدم افعال خارجی مثل صدق و کذب و اینها آیا دایره اخلاق مال هر سه بخشه مال مدکات نحسانی و اوصاف و افعال خارجی یا خصوص افعال این رو اصطلاحاً قدیم بهش ادب الفعل میگفتن ادب القول هم همونی که ما ادبیات میگیم البته ادب القول در اصطلاحشون شامل هم صحیح بود و هم چیزی که حالت برتری داره مثلا با ده رو سرف و اینها صحیح رو درست بیان میکردن با بلاغت برتری رو مجموعه اینها را ادب القول میگفتن و به اصطلاح در لغت عربی هم کسی که استاد اینها بود معدب بود و چند نفر این علی بن حسین سعدابادی معدب یعنی کسانی بودن که معلم علوم ادبی بودند. نه با سرد یاد میزن بیده اسطلاح هم می و جایی هم که اونا رو یاد میزن ادبستان میگفتن که بعدها ادبستان شد مثلا تخلیم شد به درستان پس بنابراین ما یکی عدب داریم یک متعارف داریم یکی از خط متعارف به پایین که این سبب که لذام جزا آفات لسان قرار داده شده جزا اعمال زش قرار داده شده و این سب و لذام فاقده ارزشه این توجیه اون بحث عقلیش هم شد اصلا این سب هیچ نوع ارزشه به منطقی نداره ارزش از و سلوکی و ادبی نداره او این جرزه هیچ نکته خاصی نداره حالا ان الله امروز که وقت داره آورش تمام میشه لذا این مقدمات رو دقیق بخونید اما راجعه به لن این اینطور نیست مسئله لن در این جهت فرق میکنه البته دیگه من کتاب محکم رو نیاوردن از لن بخونیم چون اون خیلی که طولانی میشه ها کتاب دیگه هم هست کتاب محکم رو نخوندیم راجع به کلمه لعن از همین کتاب به اصطلاح معجم مقالی سلغه معجم المقالی سلغه از این به اصطلاح میخونیم تقریبا البته اون بهتر نوشه مضافن به این که ایشون در اون کتاب اون قسمت های مقلوبش هم آورده. یکی نعله رو آورده، یکی لعنه رو آورده، یکی هم به اصطلاح بلا علنه رو آورده. در اونجا آورده و اونا کرده که یه خب خدا ơi ان مراجعه من دیگه می‌خوام بخونم که طولایی ان شاء الله ما رو اما راجع به بلند در این کتاب معجم المقاییس مال ابن بله حالا دیگه در وقت من یک اصل عبارتش رو بخونم بعد برمی‌گردم یه تفریشیشون میشد شش شما میزیدیم به فرضا میزید بود. دفعایی بسیده دفعایی بسیده دفعایی بسیده بسیده بسیده شما نگده